دومین عادت زده تنبلی اهداف دال سین دال میمزه بحانه ای که از میان می رود. مهم نیست. آسان است که روزتان را با اولویت بندی نکردن کارهایتان به دست خودتان برباد دهید. نتیجه هم آن است که اغلب بر روی انجام فعالیت های کمعرزشی متمرکز می شوید که نتایج چشمگیری را زمانت نمی کنند. در حقیقت تاثیرگذارترین استراتژی ضد تنبلی افزایش توانمندیتان در انتخاب پروژه‌هایی که باید بر روی آنها کار شود و پروژه‌هایی که باید از انجامشان خودداری شود است. همه ما بهانه‌هایی برای به تعویق انداختن کارها می تراشیم. اما اگر وقت بگذارید و در افکارتان کندوکاو کنید، خواهید دید که تمام این بهانه‌ها بنا شده بر این احساس ناخوشاگاهند که کار مورد نظر چندان هم مهم نیست. راه حل چیست؟ آسان است. تنها باید عادت ارتباط دادن هر کار با یک هدف را در خودتان پرورش دهید. هرگاه خواستید کاری را آغاز کنید، از خودتان بپرسید که این کار چگونه در برنامه اهداف بلند مدتتان جای می گیرد. اگر این کار به طور مستقیم با هدفی مکتوب گره خورده بود برای انجامش وقت بگذارید. اگر هم ای بود که به هیچ هدفی ارتباطی نداشت، از حذف کامل یا سپردن آن به شخص دیگری باکی نداشته باشید. تعیین اهداف سلاح مخفی شما در جنگ علیه تنبلی خواهد بود. دانستن اینکه کدام کار مهم است، چارچوبی برای برنامه های روزمره شما میسازد، بدین ترتیب شما دیگر خود را برای انجام کاری بی اهمیت فلج نخواهید کرد و در عوض دست به کار انجام فعالیت‌هایی خواهید شد که می‌دانید در برنامه اهداف بلندمدتتان جایگاه خاصی دارند شما می‌توانید این عادت را با تعیین اهداف دال سین دال میمزه برای فعالیت‌هایتان به کار بگیرید در اینجا دال سین دال میمزه سرواژه کلمات دقیق سنجیدنی، در دسترس، مرتبط و زمانمند است که همه باید از ویژگی های اهدافتان باشند. در اینجا به کار کارکرد این اهداف اشاره می کنیم. دال دقیق پاسخ به شش سوالی که در ادامه میآیند راهی سری برای نهادن هدفی واضح با نتیجههای چشمگیر را ایجاد می کند چه کسانی درگیر این هدف هستند؟ به چه چیزی می خواهید دست یابید؟ کجا به هدفتان دست خواهید یافت؟ چه زمانی می خواهید انجامش دهید؟ چه ابزار و محدودیت هایی بر سر راه شما قرار می گیرند؟ چرا انجامش می دهید؟ در اینجا به مثال عالی از یک هدف دقیق می پردازیم. در روز شانزدهم ماه من یک ارائه شفاهی پانزده دقیقه‌ای حسابی در مورد تغییرات به روز پروژه نکسوس به رئیسم ارائه خواهم کرد. در این مثال هیچ نکته مبهمی وجود ندارد و راوی در پایان روز شانزدهم ماه به خوبی در خواهد یافت که آیا به هدفش رسیده است یا خیر. سین سنجیدنی جنبه دوم تعیین اهداف دال سین دال میمزه قابل سنجش بودن حاصل آن است. بالاخره زمانی فرا می رسد که شما بدون هیچ شکی می خواهید بدانید که آیا به هدفتان رسیده اید یا نه. در مثال بالا ارائه شفاهی نتیجه ای قابل سنجش نیست. اما یک ارائه شفاهی پانزده دقیقه‌ای کمیتی قابل اندازه گیری است و دو حالت برای آن وجود دارد. یا انجامش می دهید و یا نه. بدین ترتیب میزان دقیق بودن هدف شما هم بالاتر می رود. مثلا به عنوان تعیین هدف فقط نگویید که شما سخنرانی در جمع را خواهید آموخت و در عوض به کمیتهای قابل اندازه‌گیری که بر پیشرفتی پیوسته تمرکز دارد بپردازید دال در دسترس مطمئن شوید که اهدافتان دستیافتنی باشند اشکالی ندارد که این اهداف چالشهای سختی برای شما پیش آورند اما رسیدن به آنها هرچند که با سختکوشی بسیار باید که عملی باشد. در مثال بالا شما نمی توانید هدف کوتاه مدت سخنرانی در یک کنفرانس بین المللی را هدف خود قرار دهید. مخصوصاً که تا پیش از آنی سخنرانی نکرده باشید. هدف بهتر می تواند سخنرانی کوتاهی در جمع میهمانی دوستانتان باشد. البته منظور ما این نیست که شما باید از تعیین اهداف بزرگ پرهیز کنید. هرگاه که به موفقیتی یافتید هدفی بزرگتر و چالش تر را برای خودتان تعیین کنید. اما باید که آن هدف به نظر خودتان هم در چهارچوب دستیافتنی های زندگی شما باشد. شاید اگر به همین ترتیب ادامه دهید، سار دیگر خود را در حال سخنرانی در یک کنفرانس بین المللی ببینید. میم مرتبط تمام هدفهای شما باید مرتبط با های خودتان باشند و مثلا نباید به وسیله همسر والدین یا دوستان به شما تحمیل شده باشند. هدف شما باید بر نتیجه تمرکز کند که به راستی خواهان آن هستید. این خود شمایید که باید علاقمند به فعالیت در راه رسیدن به آن هدف باشید. وقتی اهداف برخواسته از شروع اشتیاق شخصی شما باشد، دنبال کردن آنها طبق برنامه روزانه آسان تر است. ز. زمانمند اهداف خود را در چهارچوب زمانی مشخصی قرار دهید. برای مثال، خود من به شخص دوست دارم، اهدافم در دو دسته کوتاه مدت برای ماه آینده و بلند مدت برای سه ماه آینده تعیین شوند. فوری بودن اهداف به آنها کمک می کند، ملکه شما و در زم دستیافتنی تر باشند. یک هدف زمانمند نمی تواند. من یک ارائه شفاهی خواهم داشت باشد، بلکه بهتر از بدین شکل باشد. در روز شانزدهم مه، من یک ارائه شفاهی پانزده دقیقهی حسابی به رئیسم ارائه خواهم کرد. تعیین اهداف نباید به فعالیتهای شغلی محدود شوند. و باید با تمام تصمیم گیری های زندگی شما عجین شوند. به یاد داشته باشید که در این کتاب قصد داریم بر به طبیق انداختن کارها غلبه کنیم. پس لازم است که شما هر کاری را در نظر بگیرید و ببینید که جایگاه آن در برنامه دراز مدت شما کجاست. این بدان است که شما باید برای هر کدام از موارد زیر هدفی تعیین کنید. آموزش رسمی و غیر رسمی. شغل و فعالیت حرفه‌ای. سلامتی و تناسب اندام تفریح و سرگرمی روابط با دیگران مسائل مذهبی مسائل مالی خدمات عمومی البته لازم نیست در یک زمان بر روی تمام این موضوعات تمرکز کنید در عوض بهتر است برای حوزه هایی از زندگیتان تعیین هدف کنید که در حال حاضر اهمیت چشمگیری دارند در آخر لازم است که شما با تفاوت دو دسته مهم از هدفها و چگونگی تاثیر آنها بر روی انجام کارهایتان آشنا شوید. نخستین دسته اهداف اجرایی هستند که نه بر روی نتیجه که بر روی تلاش برای رسیدن به نتیجه تمرکز می کنند. هرچند رسیدن به نتیجه در هر هدفی مهم است، اما در این گونه اهداف بر روی راه رسیدن به آن تحکید می شود. برای مثال یک هدف اجرایی می تواند من تا یکم جوان یک کتاب 15000 کلمه ای منتشر میکنم. دسته دوم همانا اهداف نتیجه دار هستند که در آنها شما میخواهید یک نتیجه قابل سنجش و دقیق را از آنها حاصل کنید. در این دسته از اهداف هم تلاش شما مهم است اما دغدغه اصلی شما رسیدن به آن نتیجه است و اگر به آن رقم خاص نرسید در هدفتان شکست خورده اید. مثالی که گفته شد به عنوان یک مثال اهداف نتیجه دار به صورت در می آید. من تا روز یکمه ژوئن کتابی منتشر می کنم که به طور متوسط هر روز ده جلد فروش داشته باشد. من تعیین اهداف اجرایی را به جای اهداف نتیجه دار به شما توصیه می کنم. مهمترین نکته آن است که عادت واداشتن خودتان به سخت کوشی و تلاش طی یک برنامه روزانه را ایجاد کنید. شکست در برآورده نشدن رقم از پیش تعیین شده در اهداف نتیجه دار کننده است اما در اهداف اجرایی شکستی وجود ندارد مخصوصاً اینکه آنها شما را بر روی فرایند پیشرفت خودتان متمرکز می کنند و نه بر رسیدن به یک نتیجه هیچ یا همه چیز اجرای این عادت در اینجا به چگونگی استفاده از اهداف دال سین دال میمزه برای مبارزه با به تعویق انداختن کارها اشاره می شود؟ یک به آنچه می خواهید در سماه آینده بدان دستیابید فکر کنید دو اهداف دال سین دال میمزه که برای حوزه های مختلف زندگیتان در نظر گرفته اید را یادداشت کنید سه برای هر کدام از این اهداف یک برنامه عملیاتی بریزید. در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد. چهار اهدافتان را طبق برنامه روزانه مرور کنید. پنج در یا که هر پروژه جدیدی که با آن مواجه میشید چگونه با این اهداف در ارتباط است؟ شش هر کاری که به این اهداف ربطی ندارد را حذف کنید و یا انجامش را به شخص دیگری بسپارید. هفت، در پایان سه ماه موفقیت کلیتان را ارزیابی کنید 8. اهداف جدیدی که چالش انگیزتر هم هستند را برای خود تعیین کنید وقتی کاری به نظر مهم نمی به تعویق انداختن آن آسان تر می شود متاسفانه چون نگرشی می تواند تأثیری منفی بر روی انجام شدن پروژه های شما داشته باشد بالاخره به جایی می رسید که باید تصمیم بگیرید می خواهید آن کار را انجام بدهید یا نه؟ شما با تعیین اهداف دال سین دال میمزه، فهرستی از آنچه فعلا در زندگیتان دارای اهمیت است را تهیه می کنید و بعد هرگاه که وسوسه شدید کار جدیدی را شروع کنید برای تصمیمگیری در این باره چهارچوب مشخصی دارید بدین ترتیب که این کار یا آنقدر مهم است که باید شروعش کنید و یا به هر قیمتی که شده از انجامش خودداری نمایید.